حکیمی که با جوحال درفتد، توقع عزت ندارد، وگر جاهلی به زبان آوری بر حکیمی غالب باید، عجب نیست که سنگی است که گوهر همی شکند. نه گر فرو رود نفسش، اندلیبی بی قراب هم قفسش. گر هنرمند از او باش جفایی بیند، تا دل خیش نیازارد و در هم نشود، سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین به شکست، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود.